شما بخیر خیلی خیلی مشاکرم از شما و بزرگوار به بخشی رسیدیم که همه ما مشتاق هستیم که خیلی سریع در خدمت مهمان عزیزو گرانقدرمون باشیم علامه دانشمند حکیم بزرگوار استاد محترم جناب آجاقای زیایی که محضرشون هستیم و از دستاوردهای های علمی ایشان پیرامون طب اسلامی و طب سنتی بهره من میشین سلام از کنم. سلام بسیار خوش السلام مرحبایی کم سلام بحمد شما بزرگوار این بزرگواران و ملت شریف ایران مخصوصا خلاصانی های عزیز خیلی ما شما هم تحتیلات جایی تشفیر نفردی نه مشهد مقدس بودیم بسیار ممنون. برای ما بایستش سلامت باشید که بتونیم در این ایام هم خدمت شما باشید سلامت باشید ممنون خب چون میدونم بینندگان عزیزمون هم تعجیل دارن که پاسخ سوالات مطرح شده شون رو دریافت بکنن اگر اجازه میفرمید من خیلی سریع رؤوس هایی که به سامانه پریامت 3625 ارسال کردید رو عرض میکنم بینندگان محترمی اشاره میکردن که گاهی اوقات در جمجمه بالای سرشون یک اسپاسپای عصبی ایجاد میشه یعنی به حالت تیر کشیدن مم. کاسه سرشون بشه، درد درد میگیره و بعد منجر به درد گرفتن حدقه چشمشون میشه به طوری که بیناییشون رو تحت تاثیر گاهی اوقات قرار میده حالا این زمینش یا است یا در حال تحریکات دیگه ای هست خواستن یه که این آرامش رو براشون ایجاد بکنه رو بفرمایید گل رای یا هو فاریق چای صبحانه شون از این باشه دم کرده گل رای یا هو فاریق فقط همین؟ بله گل رای یا هو فاریقون خارجی خارج. ها میگه داروهای دپرسانت جمهوری اسلامی ایران قطرش هم زده قطر های پیران برد. متشکرم اما غذاهای ترش و تندوتیز برای این افراد خیلی بده مخصوصا در ایام بهار غذاهای ترش و تندوتیز هم نباید استفاده کرد متشکرم اما گفتن که فرزندشون تنگی نفس داره و در خواب هم نفس که کشیدنش به صورت طبیعی نیست این اولین پرسش شونه اینا قزاهای چرب و قزاهای تند و تیز و سُخ کردنی نخورن نه البته نوشتن بچه‌است ایشون بله بله. بله بله خب بچه‌ میگم غذاخوره دیگه بله که غذا خورد شش ماهگی به بعد قزاهای چرب قزاهای تند و تیز و سُخ کردنی نباید بخوره مخصوصاً شبه ها کوکو و تخمماغ نخوره اینها قالبا دچار اپنه هنگام خواب توقف تنفسی در هنگام خواب میشن و امام رضا و او فرموده این به خاطر زیاد روی در مصرف تخمماغ یا کوکو. خاطر هست یه جلس هم شما فرمودید که افراد بزرگ سال هم اگر میخوان تخمماغ بخورن حتما با پیاز میخوان حتما آفرین بله. بله. و گفتن که حاجی خانومی در اثر فاصله افتادن مهره های کمرشون مداماً با دردی پا مواجه هستن. بله. اینا باید در بین کاراشون استراحت کنن. حالت ایستاییشون تو یک حالت بودن زیاد نباشه. بار سنگین بدن ندارن، چرخش سریع کمر یا مفصل نباشه. بعد میتونن ماساژ بدن با روغن سیاه‌دانه خالص. بله. روغن سیاه‌دانه خالص. بله. متشکرم، ما پوستش ها رو از استاد محترم درخواست کردیم خیلی به سرعت چون تعداد سآل ها زیاد هست خدمت بیندگان عزیزمون باشیم اما گیاه که برای خانمهای که اکثرا مبتلا به میگرن هستن چه گیاه داروی مناسب هست؟ بهترین داروشون سه چیزه چه میگرن یک طرفه، چه دو طرفه، چه پشت سر تا ملاز که از 60 نوع سردر 14 نوعش میگرمیه اما داروی های اصلی یکی گل راعی که صبح میخورم دم کرده یا و وسط روزی یا ظهر چای کوهی و اول مغرب یا شب گل بحار نارنج دم کرده یا جوشندش یا مربرش یا اصلش همین داروش نشکرم نشکرم حالا افرادی که درد دل مداوم دارن حالا این بیماری و اختلال ببارشی اگر از این ها اکثرا یا پرخوری میکنن یا بدخوری و گایی توجه ندارن که اول و بین و آخر قضا چی بخورن این بزرگوارا اگر قبل از قضا سبزی سوسنبر یا چای و و فلفلی بخورن بین قضا چار زیره مختصری سیاه دونه اگر نفخ و قرقرای کمی هم دارن یه قاشق چای خوری سیادونم بعد غذا میخوره بعد یه مختصری قدم میزنه بعد یه استکان آبسی به تازه میخوره سرسوزه معده، استیاد گاز معده قرقرای شیکمی پوده تخمه ترشا سردل و حتی پیشگیری و درمان ریفلاکسی یا برگشت اصیل معده به مری مچهکرم استداز دارم مستازی های علاوه بر گیاه داروهایی که از تالی اشاره می فرمایید اگر چنانچه عرقیاتی رو هم توصیه می فرمایید برای عرضانی که پرسش هایی رو دارن ممنون میشن اشاره بفرمایید عرقیات گیاهی اگر طبیعی باشه بدون اوسانس شیمیایی باشه تازه پنجاه درصد خواست اص رو داره اص رو داره بله بله تازه اگر طبیعی باشه بله فرقی خب مرسل کردن برای رفع قلیزت خون چه گیاه داره؟ خون ها جو طرف بشه یکی تمشک ماشالله تو ماه بهار میاد بله. یکی هم ریواز یکی اناب بله. یکی آلو بخارا یکی هم زرشک خام بله. اینا همه بقیق کننده های خونند به جای مثلا آسپرین وارفارین هپارین چیزای جدید هم اومد متشکرم. افرادی که سابقه فشار خون دارن نوشتن پنج سال سابقه فشار خون دارن و قرص فشار خون لوزال استفاده میکنن آیا میتونم گیاه دارویی جایگزینش کنم بله پودر شنبلیله و نهارو شامش یه قاشق مرباخوری بخوری بخور بله پودر شنبلیله بله فشار خون سریع پایین اگر هم قند داره هم فشار داره هم چربی روزی چهارده عدد زغال اخته ایرانی ها میگن تهرانیان ها میگن زغال لخته ولی بی نمک بخوره روزی چارده عدد هر ستا با هم بعضی اینجا غالختر رو با جوهر لیمون قاتی نه نه. اینه نه اونجوری نه دو رسایی گوارشی میاره بسیاره دلی. و مطرح کردن که برای رفع بیماری پارکینسون که سه سال لیمون هستن چه گیاه مفیده مفید نه کمک به درمان کمک به درمان چون لقوه یا پارکینسون عدم حرکت حالا باید ببینیم زعف بنیه داره یا زعف ازولات پا داره یا شریان اصلی به ازوله پا تنگی عروغ داره که بشه متخصص پاتولوجیست بافشناس باید بره بعضی وقتا ببینیم نه. این مثلا در رفتگی مفصل بوده و جا خوب نیفتده یه پا نازکتر از پای دیگه میشه کلن افرادی که پارکینسون هستن مثل بقیه افراد جامعه در حال جنابت خوردن و آشامیدن بسیار بده دوبون قضاهای منده سوم در ظروف آلومینیامی و سوربی قضا خورده چهارون در ظروف پلاستیکی اینا بسیار برای افراد زرد داره برای اینا بدتره همینطور میتونه و... کمک به درمان کنه چیزایی که مقوی اعصابه و تقوییت است مثل اصل آبیشن مثل خورما یا شیره خورما بله. مثل کباب یعنی کباب لغمهی بله. با دوغ شیرینی کمچر یا ماست شیرین کمچر بله. سلامت باشه مطرح کردن کلیه هاشون بله. افونت داره و سنگی سازه بله. مال یا دارویی بله. که دو بله. مال افونت کلیه دوغ شیرین کمچر به اضافه آب سفید. نصف لیوان لیوان مخلوط میکنه میخوره اما کلیه هاشون که سنگ سازه شاید آب آبجوش بله هم کم میخوره و در 24 ساعت باید 8 لیوان مصرف کنن 4 لیوان آب 4 لیوان آبجوش بله یعنی هر 6 ساعت 2 لیوان یه لیوان آب آشامیدنی آشان سالم یک لیوان هم آبجوش بله اینا دوچار شن و سنگریزه کلیه نمیشه حال اگر داره هلده همده ازد افسونه مثل سالقه خال شطری مثل عرب خال خسک مثل جوشانده کاکل زولت یا جوشانده دم داروسازی حکیم تبریز حاجبان از این سه تا دارو زده یعنی از خال شطری خال خسک و کاکل زولت اسمش از تیزن مخلصه بسیار عالی بله که زیاد ترش میکنن بفرمایید که چه گیاه دارویی اینها حواجب باید غذاهای ترش تند تیز چرب یعنی خیلی چرب نخورن فست فود ها دو سسای شیمیایی و کافئین زیاد نخورن سیب و اینایی که شمردم ترشاشون بیشتر میشه اینا رو باید تر کن حالا باید که برای اینکه ترش نکنند برای غذا خوردن نیم ساعت وقت بگذارم اگر دندونشون مشکل داره تعمیرات اساسی دندان کنه. پیش متخصص دندون لهبه. سوم برای غذا خوردن نیم ساعت که وقت گذاشتن غذا رو خوب بجمد نه جویده یا کم جویده قورت نده قبل غذا بین غذا بعد از غذا حاجقان مایات نخورند. بعض یا هر لغمه ای که میخورن یه قلاب آب یا شرابت یا دوغ یا مشابه میخورن تعادل سیستم گوارشی و تعادل اسید معده رو به هم میزن ترشاشون بدتر میشه. حالت ریفلاکس هم می‌گیرن. سوزش دائمی سر معده یا مری یا تلخی فضای دهان می‌گیرن. این موارد رعایت کنن بعد حالا از باب دارو قبل از غذا سبزی سوسند بهینه‌ غذا سیاه دونه کافی بعد از غذا هم یه استکان آب تازه یه مختصری هم راه دارن بعد یه رفتار منفی دارن با خودشون بعد از غذا کنار سفره لم میدن دراز میکشن این خیلی کار دادیه بعد از غذا باید یه مختصری راه دارن بعد بیان استراحت کنن حرکتشون باید بیشتر بشه آفرین متشکرم پرسش دیگه مطرح کردن که فکر کنم خیلی ها هم مستقیما به جناب مراجعه داشتن که برای ترمیم زخم‌های عفونی چه گیاه دارویی مناسب هست؟ اینجا برای ترمیم زخم‌های افونی یکی از ادویجات بسیار مهم زرچوبه خالصه پودر زرچوبه خالص در ترمیم زخم‌های افونی حتی زخم‌های قانقاریو که پوسیدگی بافت مخصوصاً در بیماران دیابتی بعد اینو به چه نحوی باید استفاده اینا این اینا گاستریلای یا بالمسات غیر روغنیو از داروخانه می‌خرن یه قاشق چایخوری روش پودره زردچوبه خالص میریزن میذارم رو همین زخم قاروندا هم. بهتر اینه که زردچوبه رو چوبش رو تایید کنن بعد خودشون آسیاب بله بله کنن بله بشورنش بله بله بله بشوننش گرد و خاک اینا بره بعد با دستگاه هیتر برقی یا رو بخاری تو سینی پن کنن سریع خوش کنن که باکتریایی قارچی نشه بعد خودشون آسیاب کنن پودرش رو تو شیشه های دربسته نگهدارم بعد هر روز یه قاشق چایخوری می‌ریزید این مانده گاز استریل میذاره رو زخ 24 ساعت یک بار عوض کنه هر بار هم شستشو بده با آب مقتر این مال زخمای قانقاری حتی بعضی سنگاه هست مثل حجر الیهود یهود کتاب های عربی داره که حتی این برای زخمای نکستینه هم خوبه زماد گل بابونه هم در درمان زخم و چرک مفید. زماد گل بابونه بله بله در درمان زخم چک مفیده مخصوصا زخم نوک پستان که گاهی در حضرت خانمایی که بچه هستن رخ میده بسیار بله. اما برای دفع سنگ سفرا هم چون ما چند رحله خاطرم هم اشاره کردیم در مطرح کردن بله اینا یک بار دارون مرکبه داره یا بار مفرده مفرده ایچ مثل جشنده هستهی خورما همچنین تمرهندی با آب سفرا رو خیلی رقیق می و به عنوان هلدهندهی طبیع و از لوچی لجنی در میاد و کمک می به دفع سنگ های ریز سفرا و بعضی از اقسام سنگ های سفرا مخصوصا کلیسترولی رو خوردش اما اقسام دیگه است از سنگ های مثل سنگ های پیگمانتی قهوه و یا پیگمانتی سیاه اینجا باز داروهای مرکبه چار میوه می دهن آلوب بخارا، آلوچه، تمر هندی، اناب. بعضی افراد به جای اناب زرشک میزن اگر کسی علایم سنگ صفرا و قذت صفرا، قذت خونم داره. اینا یکم جابجاش. بسیار عالی. اما مطرح کردن که سندروم فنوکونی دارن. نه بله. اشاره بفرمایید گیاه که میتونه مؤثر باشه برای رفع این بیماری. اینجا این بندگان خدا ها مشکل جذب آب دارن در بدن آب در بدنشون جذب نمیشه کاملا آبی که میخوره ها جاقا میشه حالا اینجا دوغ شیرین با ترپ سفید بخوره اول کلیهاشو فعال نگه داره و افونی نباشه سوم چیزایی که گرم و خشکه مثلا مثل سیاهدانه مثل میوه امله یا مربع امله امله اینا تو جیره قضایشون بزارن همی بسیار افرادی که بار زیادی روز زبانشون میشینه ده ده. و گفتن که هر روز صبح هم ناگذیر هستن برای رفع بار روی زبانشون مسواک بزنن مسواک بزنن این ابتدار به ثمر که ناشی از چیه اینا التهابات شدید مزاجیه آفت ها نیست التهابات شدید مزاجی حتما به همراه کاهو و پرتقال شیرین با نهار کاهو و لیمو شیرین با شام بخورم خیلی, خیلی ساس بله بله بدون خیلی فواید داره هم اینه که بار زبانشون خوب میشه چنان. اگر انار شیرین دوست یا فصلش یا به انار شیرین هست روزی یه قاشا پلوخوری خوری بخورن انار شیرین بیماری ALS ال... یا بیماری حرکتی چهار اندام رو هم در خواهد بله. گردم بفرمیدن بله. در این رفعش بله. چه گیاه دادهی مفید هست اینجا هم مؤمن بی حرکتی چهار اندام بدن از دو دست و دو پا این بیماری ALS که اشاره فرمودن تو سوالاتشون بینندگان عزیز صبحان عوصه شیر اثر شیر خورما و حلیم گوش بگذر بعد اون برای که اعصاب حرکتیشون و اندامیشون از ضعف در بیاد صبحها، دم کرده گل رائی با اصل آویشن بخورن اول شب دم کرده گل بحار نارنج با اصل آویشن بخورن این دور افراد دلخوره دارن به نوع دلخوره شدید و اصلا روحیه غالبا ندارن نیست تو کارای شخصشون یکم مونده، خیلی به هم میریزن برای درمان این دلخوره شدیدشون و عدم روحیه مخلوط این سه را اسرانه بخورن که گلاب و عرق بیدمشک به اضافه اصل آویشن خب این گلابش نصف استکان عرق بیدمشکش نصف استکان این اصل آبیشنش هم که یه قاشق پلو خوریم. هم میزنن میخورن. این مخلوط رو میتونه شب بخوره. مطلب دیگه قبل از خواب شب آبسیب تازه رسیده با اصل آبیشن رو خوره. این عوارض بیماری همه برطرف میشه. کمک میکنیم به اندام حرکتی و تقویت ازولات دست و پا میشه. بسیار. سلام برای این گونه افراد کار درمانی بسیار خوبه، بله. من ماساژ بدن اینها می‌دهم. بله. و درخواستی دارم بفرمایید که گیاه داروی نشاط آوری رو معرفی کنید برای اینکه در طول روز بتونن استفاده کنید. بله، بله. یکی هاچ زعفران یا عسل زعفران. یکی هم شکوفه پنبه. حالا بله اینا رو باید کم بخورن. هالدش رو باید کم بخورن تا نرسایی ذهنی پیش نیاد. هر دو نشاط آوره طبیعی بس. اگر تو میوه ها بخوان که مفرح قلب و رفع هم مقم میکنه دو چیزه یکی میوه گلابی یکی خوردن انگور سیاه و اما بیننده محترم میگفتن که از منظر عمومی بله. خب بعضی ها اصحال میکنن که ازدواج های فامیلی در گاهی اوقات منجربه تولید کودکان با عقب ماندگی ذهنی می شود. بله. حالا خانواده‌ای که کودک عقب مانده ذهنی دارند در تولد دوباره فرزندشون چون این دغدغه رو دارن که و خدای نکرده مبتلا نشن یا فرزندشون با همین ویژگی به دنیا نیاد آیا می شود گیاه پدر یا مادر استفاده بکنن که منجر به این اتفاق مباشه قبل از این که شرعی و قانونی کنن خوبه که یه آزمایش جنتیک برن چه فامیل باشن چه غیر فامیل یه آزمایش جنتیک برن ببینن به هم میخورن یا به هم نمیخورن چون بعضی از این مسائل عقب مندگی های ذهنی جنتیکی و وراستی هست پس آزمایش جنتیک قبل است ازدواج قانون شریع و حتما برن دوم هاجه بعضی اقسام اقرب نمیدگی های ذهنی آغازیه مثلا به خاطر رفتار منفی پدر مادر با خودشونه مثلا هر دو دخانه دخانیاتی هست یا مواد اپیونی و مانندو خب یکی از علل عقب موندگی های ذهنی شنتیکی وراثتی همین مصرف بیرانی... هم تاثیر داره است چون میگن اگر کسی در سن بالا بخواد دارای فرزن بشه این اتفاق ممکنه ب. خله ذریب احتمالش بیشتره بله. همه چیز ها تو باها رو آم خوبه تو رهسل جوانی سقفش در از یا سی و پنج سالگی در بعضی یا تا چه و پنج سالگی در مردم. برای تکثیر نسل بهترین زمان در پسران 25 سالگی به بعد و در دختران 16 سالگی به بعد اگر رشد کافی و وافی داشته باشه از 35-45 به بعد همین فرمایش شماست هم. گایی هم هست نه بهترینه اگر پدر درست عمل کنه حضرت ابراهیم نبی علیه السلام 120 سالش بود حضرت خانومش 90 سالش بود نبی خدا آورد حضرت اسماعیل میخوام بگم که یعنی پدر مادر درست عمل کنن تو هر سنی باشه اشکال ندارد البته اون موقع جنساتا قلبی نبوده <تصفيق> بله راست میگیم <نگید. تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بله فهموش شما سعیه. <تصفيق> <تصفيق> پس گایی هم به خاطر رفتار منفی مثلا دخانیات زیاد میکشه مغاد افیونی اینا یه بار دیگه نه پدر و مادر از روی جهل به بچه شون چیزی میدن که این بچه مبتلا به عقب موندگی ذهنی میشه بلعرز آرزی شده جنتیکی براستی نبود و اون چی ها میوه موز بچه ششمایگی تمام تا سن دو سالگی اگر میوه موز زیاد بخوره دوچار عقب موندگی ذهنی آرزی میشه و زد تو 24 ساعت یه تیکه موز رسیده دادن زیادش همه این که خونه آقا بزرگ میره خونه این فامیل این فامیل این فامیل مثلا عیدیدنی ها که میرن حاجبا حواستشونی بچیشون زیاد موز بخوره هم لکنت زبان میگیره هم یوبوست شدید میگیره هم دوچار عقب مندگی ذهنی آرزی میشه بسیار سلامت بیننده محترمی که خانم هستن گفتن چند روزیه که اجابت مزاجشون رنگش غیر طبیعیه و سبز رنگ شده چه کار باید بکنن چه گیاه استفاده کنن اینجا باید ببینه آیا سینه پهلو کرده یا بیماری زاتل الجم یا پلوریت گرفته و یا سرماخوردگی شدید بوده حالا هر کدوم از این موارد بوده با تشخیص پزشک متخصص خوش درمان کن کیو ظاهرش ظاهرش میگیم اب سیب یا سیب تو جیره غذایی باشه بعد هر غذا که هم ضد سرماخوردگی هم ضد چرک آفونت عفونت داخلی یک آنتیبیوتیک بیوتیک طبیعی با. و خانم بیننده ای هم اشاره کردن که دو عدم کنترل ادرار هستند در حالی که دیابت دارن چه گیاه داروی مفید هستند اجازه ها دو دو تا دارو یکی جوشانده پوست سخت چوبی اطراف مغز گردو همینی که مردم میشکنن میریزن تو هر آی اوقات بعضی هم اونو آسیاب میکنن تقلب میکنن میریزن تو فلفل سیاه میفروشن به مردم اون حرامه لعنت قش با مسلمان حرامه تو روایاتش یه دنین میگه از ما نیست کسی که با مسلمانی قش کنه فرمای شما سید بعضی حواشی چون حالا جوشانده يه. پوسته، سخته، چوبیه، اطراف مغز گردون تا از اینار توی یه قوری کچیک میزه، سه استکان آب میزه، 20 دقیقه به جوشه بعد این جوشنده رو میخوره، هر بار تازه جوش باشه، بقیهش بریزه دور این بیماری چک میزک یا ریزش بی اختیاری ادرار خوب میشه حتی در دیابتی ها و اگر کسی علایه بر این مشکل شب ادراری داره چه در کودکان و چه در افراد بزرگسال چه مرگ چه زن اینجا خولنجان که تو رو وایت اومده میگن قولنجان یا خسرو دارو حتی میگن اگر کودک باشه به اندازه یک دونه ماش از این جدا می‌کنیم زیر زبونش باشه همینطور تا آب بشه بعدم قورتش بده شب ادواری کودک خوب میشه اگر سنای بالا باشه به مقدار یک عدس از این خولنجان یا قولنجان و قف یا خود صداروزی زبونشون میذارن تا آب شه شب ادرالی خوب میشن و سعای کردن برای رفع شوره سر چه گیاه دارهی مفید هست اینجا یکی سرکه ی طبیعی سیب نیم ساعت دو ساعت هر مقدار دوست دارن. قبل از حما تو خود حما هم میتونه به سرش قشن بزنه ماساژ بده خیلی فواهد داره شربی اضافی مو شوره موی سر پوسته های اضافی بعد از قبلش یا قبلش قبل اینکه خودشونو بشوره قشنگ به سرش میزنه ماساژ میده به پوست سر برسه. سرکه طبیعی سیت اندازه که داخل مشتش بریزه بله و بشه بله بله حتی خیس هم بشه اشکال نداره حاجا قشنگ ماساژ بده و تا اون وقت سر و تا وقت گردن و بدنش میشوره آخر سر سرش میشوره با سرکه سیب بله نه سرکه سیب اول زد بله اخرش هم میتونه با صابون گل ختمی یا صابون و شامپوی عادی یک دست صابون یک دست شامپو بزن کافیه زیاد هم تو گیاهان دارویی رزماری یا اکلیل کوهی محلول اکلیل کوهی یا رزماری اینم ضد شوره و و تقویات ساقه‌مون میکنه ولی دو مورد احتیاط داره خانومایی که حاملن و یا زنانی که بچه شیرده هستن نباید به سرشون بزنن هم سخت جنین بیاره هم شیر مادر کمش اما کسی هم که زعف احساب شدید باشه نه. اگر به سرش بزنه حالت تحوه میگیره حالش به هم نخوره متشکرم. خاطرم هست که حضرت علی برای رفع بوی بد دهان هم اونم 20 علت, علت داره باید ببینی بودی. کدومه اینا تو سیدی های تبار رسول مصطفى بفتن. مثلا اگر دندان نیمه نهفته عقل داره خواهی باید بره پیش متخصص جراحه لسته این تاج دندونش از زیر لسته در بیان چون یک کم نیمه نهفته است بخشی از این تاج دندان زیر لسته است بخشیش بیرون یه بار دیگه نه خلال بعد از غذا جایی که آب هست باید کنه ایشون خلال نمی‌کنه یا از نخ دندون استفاده نمیکنه اینا یعنی بوی بعد دهان می‌گیرن یه بار دیگه مسواک مرتب نمیزنه مخصوصا قبل از وضو یا قبل از خواب شب یا در سحر مسواک نمی‌زنه یه بار دیگه است نه قضا میخوره مخصوصا مواد نشاسه یا مواد قندی اما سبزیجات و میوه‌جات باش نمیخوره این هم دوچار بدبوی دهان میشه یه بار هست کسی هست که آب یا آش میدن یه ساله مثل سا آب جوش نمیخوره این هم, نمی هم دوچار بدبوی دهان میشه چون قویزت ادرالی میره بالا از حیث آمونیاک بوره اینا میره بالا این هم دوچار بدبوی دهان میشه نارسایی کلیه بدبوی دهان میاد. نارسایی گوارشی مخصوصا ریفلاکس بدبوی دهان میاد. یوبوزت مزمن و حال بدبوی دهان میاد. گایی هم افراد بیماری های متابولیکی دارن مثل قند خون، چربی خون یا تو بحثه پاتولوژی کبدشناسی انزیمای کبدیشون بالاست این هم دوچاره بدبوی دهان میشه من ازم میخوام شنیدم در اطفال و نوجوان ها اونهایی که دهانشون بوی بدی داره تو اطفال و نوجوان ها یه بخشش هم ناشی از استرس خاشونه بله چون تعادل هرمونی داخل بدنش به هم میریزه ها از این حس کسانی که ها تحرک زیاد دارن تعریق زیاد دارن اما آب آشا میده میدن یه ساله می یا کسانی که سخران معلم هن. استاد دانشگان و ما ندارد یعنی خلاصه پرحرفی دارد یعنی ما موجودیاتو پرحرفی میکنم سلامت وقتی اینا باید بین صحبتاشون ها جبا آب آشامیدنی سالم و آبجوش ولرم بخورم، بخورن خیلی نه. بهتر از این چایه نه. یادم من اینجا طبیعه نکردم <تصفيق> <تصفيق> یادم از شما فهمید افرادی که تحریق بدنشون دیگران رو اذیت میکنه میتونن گلاب استفاده کنن آف. افرین آف. آف. آف. احسن خود گلاب طبیعی خوردن هم پوست بدن خوشبو میشه هم عرق خوشبو میشه هم فضای دهان خوشبو های دیگه مثل نعنا مثل آبیشن مثل ریحان اینها هم جویدن بسیار خوبه مخصوصا اگر کاهو بدون سس یا بین روز کاهو با بین طبیعی بخورن بسیار خوبه مخصوصا اگر کسای پیاز یا موسیر یا سیر خوردن بهترین خوشبو کننده طبیعی و خنسا کردن اون چیه کاهوه بعدش چند برگ کاهو به بخورم. متشکرم سلامت باشه اما پرسش دیگر این که افرادی که در هاشیه ناخونهای دستشون پوستهای هاشیه ناخونهای دستشون در واقع، پوسته, این میشه. پوسته پوسته میشه اینا به مواد شوینده خیلی دست نزنن دستکش نخی بپوشن بعد اینو تو دستکش پلاستیکی کنن حالا با آب و شوینده کار کنن گاهی هم میشه ویتامین B یک شخص کمه نغز بادام شیرین درختی چند عدد در بیس چهار تا چهارد عدد میگه یکی هم یک عدد لیمو شیرین بخورن میتونن از پمادم استفاده کنن مخصوصا پمادهای مثل روغن کشنه یا روغن قصد که زد خارشم هست بعضی روغنو هست که تروایاتشی اومده بسیار مهمه و پزشکی جدید قالبا از این قفلت کرده و طب سنتی هم فعلی هم قالبا قفلت کرده و تو اطوریان نایابه و اون از دهن البان و یعنی روغن کندر سفید خوراکی این کندر سفید خوراکی رو میریزیم تو روغن زیتون یک بیس دقیقه با شعله ملایم میجوشه بعد خاموش میکنیم خیلی فوائد داره مخصوصا ضد جوش های بزرگ زیگیل، دومل ها، جوشای چرکی خیلی فواعد داره حالا تو بحث ترمیم پوست حتی بعضی چیزایی که پزشکی جدید توش موندن کسانی که اگزماهای شدید پوستی دارن تو کف دست و پا و پوست پوسته میشه به ستی ترین لایه پوست از حیث امقی میرسه همیشه دستاشون درو فروخته همیشه پوست پوستهای شدید اینجا همین روغن بان رو به نافشون میزنن و به کف دستاشون این حالت خوب میشه اینکه گفتم به نافشون هم بزنن اینم روایت داریم. حالا من کتاب همراهانه‌ای بردم طب اسلامی مرحومه آیت الله مصطفی نورانی که نه جلدین جلد یک تو جلدی یک قسمت به شما ارز کنم که بان و همچنین در قسمت امیله این مطالب بیان شد افرادی که ترشوه خب حالا چربی از گوششون زیاد هست چون یک لایش که خب است. بله واکس ای... گوش بله. زده اوفونی میکنه و پیشگیری میکنه از ورود حیوانات بله حالا افرادی که ترشوی همین تربیه های گوششون زیاد پس گیاه داروی میتونن است بهترین آجابا بهتر اینش روغن بنافشه خالص روغن بنافشه, بنافشه خالص نه. سه قطره پنگ قطره هفت قطره فقط سه شم حالا اونا که گوششون <تصفح> ترفی بده کار نیست باید چی کار کن <تصفح> اونا دیگه باید مثلا بلا تشمیل اگر یک شخص مثلا لجباز باشه مثلاً در جده هم یک یاهدروی هست که ما استفاده کنیم این پدیده لجبازی در وجودمون کم بشه بانه بانه. این مثلا فرض کنیم یک شخص بیماری لجبازی داره از 400 نوع بیماری روانی که داریم یکیشم بیماری لجبازی شخص لجباز داروش یک چیزه همینقدر که احتمال بده که خطا کرده یا این حرف یا این کارش اشتباه دست از لجبازیش برمیداره که میعنی بعضی ها یک دنده و لجوج قدن به خاطر اینکه افراد رو عددی نمیدونه فیلم کنه عدد فقط خودشه این اشتباه محضه چون غیر از چارده معصوم همه افراد توچار خطا یا اشتباه میشن قیب دارن نقص دارن کمبود دارن چه کمبود تحقیق چه کمبود علمی همه چی تجربه و پس شخص لجباز همین همینقدر که یک احتمال بده یک احتمال آقا 99% کارات خوب حرفات خوب همه چی خوب شخص لجباز یک احتمال بده که این حرفش یا کارش اشتباهه دست از لجبازیش برمیداره و حرفش شنویش از دیگران میره بالا به نفع خودشه بله آجاب داروش همین بسیار خوب. اما بیننده محترمی هم سوال متفاوتی رو مطرح کرد بله. که سرشون دوچار زن و شک و بدبینی و بددلی است بله بله. آیا میتونن نوع تغذیهی رو پیشنهاد بکنن بله. که ایشون یه مقداری از نظر روحی و روانی با آرامش برسن بله بله قبلش باید اصلاح رفتاری و روانی کرد اینکه شوهر یا پدر بیرگ باشه بی غیرت باشه بی تفاوت باشه این بده این حالت تفریطیه که ناموسش یا اولادش هر جا بره هر جا بیاد با هر کسی نشاست برخاستن این بده از این بدتر خردگیری نکته سنجیه های بیجا و توقعات و انتظارات بیجا داشتن از همسر این ذریب سوء زن رو به همسر و اولاد بالا میبره اینم اشتباه چون سبب اختلاف دعیت درگیری لفظی و سپس به کتککاری و الفاظ غکیک میرسه اینم بده اینجا باید شوهر عزیز یا پدر گرامی توجه داشته باشه به اندازه توان هر فردی توقع داشته باشه بیش از توانش توقع نداشته باشه مثلا اگر ناموسش دخترش پسرش حجاب اسلامی رعایت میکنه بسیار خوبه حجاب اسلامی رعایت میکنه اینکه که گردی صورت تصافی فهم به قبل اینا همه پوشیده است سر پوشیده است. زیر چونه پوشیده است. گردی از صورت بیرونه بدن هم همه جا پوشیده است فقط مچ دست اینها بیرونه یا مچ پا مثلا اما کل بدن پوشیده پوشش کامل داره حجاب اسلامی رعایت کرده بعد اگر زینت داره مثلا انگشتر داره یا لک زده اینجا هم بعضی آدما میگن ندیگه دیگه اینجا میشه جزء آراش باز باید اینا بپوشونه مثلا دستکش اینا پوشه حالا منظورم اینه اگر کسی حجاب اسلامی کاملا رعایت کرد با اینکه پوشش رسمی کشور چادره و چادر از سنت های ایرانیه و از قدیم بوده حالا هم هست بسیار کار خوبیه اما اینکه بیام اجبارش کنم الا و بلا پوشیه بزن نه اینجا دلیل نداریم خودش بزنه بسیار کار خوبتریه اما این که ما مجبورش کنیم الا پوشیه بزن نه همچی اجباری نداریم همچی دستوری هم نداریم خواستم بگم انتظارات بیش از توان شخص داشتم سبب میشه که شخص رو دنده لجبازی بیفته و یا شد و و لجاجه یا سبب میشه که شخص از و خانواده فراری بشه پس این که بچه رو راها کنیم یا ناموس راها کنیم این بد. این که سخگیری های بیمورد باشه اینم بدتره نه یک تعادل رفتاری باشه اندازه توان شخص توقع داشته باشیم هجاب اسلامی را آیت کرد بسیار خوب دوست خوب دارد با ادب با تربیته، خوش اخلاقه، دینداره رعایتش اون اسلامی میکنه اشکال نداره بسیار خوب بله دوست ناباب دارد، نشینی مبتزل دارد، هزگری و ولنگاری داره اینجا از باب نهی ازبان کرد و جلاچی بگیری خواستم بگم تعادل باید رعایت بشه خوراکی که سبب بشه که شخص ریلکس بشه به قوله امروزی ها یکی آبسیب اصله، یکی شربت زعفران اصله یکی خوردن گل بهار نارنج یا مربای بهار نارنج یا عسل بهار نارنج. بله بسیار میتونم خواهش کنم از خواص سنجد برامون بفرمایید؟ سنجد خواص مختلفی داره. پوستش، گوشتش و هستش که پود بشه. پوستش برای پوست بدن، گوشتش برای گوشت بدن و عضلات و هستش که پود کنن برای استخوان بدن خوبه. از حیث املاهی که مورد نیاز استخونبندیه رضا تو روایات از شیعه و اهل تصنم داریم تو بحث قبیراء یعنی سنجد سنجد خوراکی کسانی که روده تحریک پذیر آی دارن به نوع اسال مدابه خوردن 7 تا چارده عدد سنجد برای اینا بسیار خوبه کسانی که از پوکی استخوان و تراکم سلولای استخوانی رنج می‌برند پودر سنجد با شیر بخورم بسیار خوب بسیار عالی آه. اما بیننده ای گفتن که مدت زیادی است که از ناحیه مثانه و پروستات رنج میبرم و شبها تکرر ادرار دارند آزمایشات انجام شده تشخیص اینه که مقدار خیلی کم چند سی در مستانه این ادرال باقی میمونه و همین امر منجل میشه که دوچار بیدارخوابی متنابب بشم و احساس کنم که فشار ادرال برام پیش میاد و در حالی که خیلی کم دفع میشه اداره تریخ بکنید که چه گیاه برای من مناسبه. گاهی بعضی افراد حجم مستانه شون جنتیکا گاهی بعضی افراد هستن نه تبرم پرستاد دارن باعث رفلکس برگشت ادراب به مسانه شده و تخلیه کامل صورت نمی کن. بعضی افراد هستن مایات کم می خورن بعضی افراد هستن اضافه وزن دارن و کم تحرکن حالا هر کدومشون طبق مناسبت خودشون باید درمان کسانی که هجم مسانشون کوچیکه هرگز نباید احشاء داخلی حیوانات بخورن مثل سیرابی، شیردون، کل پاچه یا جگرسی، اینا نباید بخورن. خیلی برای همه بده اگر زیاد بخورن. برای اینا بدتره چون وجه المسانه دردهای مسانه میاره. اگر تورمان و داره اونو باید درمان کنه. اگر مرد یا پسره یه باید درمان کنه. یه بار دیگه این تکرر ادرارش به خاطر تب کلیه یا قلنج کلیه است. طب گرده قدیمیان ها اینجا زردک یا حویج زرد حویج رسمی روز یکی دوتا میخورن یا آبشو یه استکان تا یه لیوان آب زردک میخوان. یا مربای زردک کلیه هاشون گرم اگر قند خون نداره زعفران با آب جوش و پودر شاخ نباد بخورن تا کلیه هاشون گرم شد مال پروستات هم قبلن توضیح بله اگر تعریقشون زیاده و یا کم تحرکن اینجا مایات مناسب مثل آب آب, آب، آشانگره سالم و یا چیزهایی که مدره تو میوهان و خبرویات مثل کاهو مثل لیمو شیرین اینا همه مدره یعنی دیارتیک مثلا اونی که از همه دیارتیکش بالاتره ادرار آور قویه مثل خربوزه شیرین رسیده خب میتونه از این مدرها تو جیره قضاییشون بذارن مثلا کاهو به همراه غذا بخورن خربوزه رسیده شیرین بعد از غذا بخورن یادم هست که فرمودید خربوزه رسیده شیرینو اگر که با پوست کسی بخوره بیماری سنگی کلیه داشته باشه دفت میشه این مال پروستات شدید پروستات شدید که پرونده زیر بغلش داره فردا بیا جرایه پروستات ها برای پروستات شدید بله بله. تورم پروستات شدید قوی ترین دارو فقط سه شب یک یه قاشخربوزه میخوره بعد از شانش با پوسش به جوه بعدش میاد بنوزه تو مخلوط کن حمزن فقط سه شب پروستات رو باز میکنه باز میکنه بدون اینکه فرص و ما آخرین پرسش در این بخش افرادی که بیماری زردی دارن چه گیاه داروی مناسب بهترین دارو برای درمان زردی دو چیز یکی کدو و با پوستش بخورن اگر بچه کچیکه مثل اکتر یا زردی نوزادان یه قاشق چای خوری و اگر آب پوست کدو سما فقط یک بار اگر زردی فقط سرگردنشی گرفته اگر تا نصف بدنش گرفته اکترش متوسطه فقط دو روز هر روز یک قاشق چایخوری آب پوسته کدو و سمن. اگر زردی کل بدن رو گفته فقط سه قاشق چایخوری در سه روز هر 24 ساعت یک بار تازه. ولی آب سیب حاجبا سنای ماها باشه هر روز یک لیوان آب سیب تازه. متوسط باشه دو لیوان شدید باشه زردی سه لیوان آب سیب یعنی هر هیچ ساعت یکی. اگر کوچیک باشه بچه از یک قاشق چای خوری یه قاشق مربع خوری یه قاشق پلو خوری نصف استکان یه استکان این بستگی داره که سن بچه تو چه سنیه؟ حمد. یه قاشق چای خوری بیشتر سن زیر شیشمایگی بسیار عالی حمد. چون باید از محضرتون مرخص بشیم و در همین بخش خود حافظی بکنیم همکارانم هم اشاره میکنن یه پرسش و مطرح میکنم خواهش میکنم به اختصال بفرمایید. خانم محترم می گفتن دو کاهش وزن هستن وزنشون خیلی کمه و دوست دارن که صاحب فرزن بشن از همین وزن کمشون می که ایستایی و قوت نداشته باشن و بر بچه هم زرر داشته ام. باشه اینجا وزنشون نرمال می به صبحانه مناسب و ریزمقزی های مناسب و پروتئین حیوانی به نوع گوشت سفید یعنی صبحانه شیر اصل شیرخورما حلیم گندم گوشت ریزمو قضی هفت عدد انجیر به اضافه هفت عدد بادام زمینی بدون پوست صورتی به اضافه هفت عدد مغز بادام شیرین درختی سه تا با هم به جان یک انجیر یک بادام زمینی یک مغز بادام شیرین درختی ستاشو با هم به جان بخوا تو گوشتا گوشت بلدرچین میتونن یک روز در میان یا هفته ای دو بار نهار گوشت بلدرچین بخورد تا دوازده مورد هست اینا همه وزن و افزایش میده حتی روایات شیع گفتیم خیار بوته ای با روتب با حرف عدد خورمای تازه بخورد فسمنتو که روایت خونده و چیزایی دیگه هم هست مهم اینه که در زمان حاملگی چیزهایی که سخت جنین می آورد از اون چیزها یا نخورن یا زیاد مصرف نکنن مثل دارچین مثل زعفران مثل نخود فرنگی کاهوی زیاد سخت جنین میاره مثل باقلا باقلا باقلی اینا زیاد خوردنش حاجی سخت جنین میاره پس اینا رو احتیاط کنن حواسشون جلب باشه چند برگ با نهار چند برگ با شام که خود کافی چیزهایی که سخت جنین میاره مثل تیزاب آبجوال، جوال وای تکس اسطون مواد سفید کننده این همه سخت جنین میاره با اینا کار نکنن چیزهایی که هم تقویت مادر شد هم تقویت فرزن مثل آب سیب با اسد، مثل یک سیخ کباب با دوغ شیرین کمچرب یا ماست شیرین کمچرب چیزهایی که کمک کنه به تقویت خودش و نوزاد حاجه یکی گلاویه یکی کندره یکی خربوزه است اخصوصا تروایی ها داره اگر فربهی مناسب و تناسب اندام میخواد پنیر رو با خربوزه پنیر رو با خربزه تو شب مصرف کنه عنوان یک دسر یا قضای کمکی یا ریزم و قضی کامل بعد اگر مشکلات ناباروری دارم اینم خودش یک جلسه وقت میگه کاغذ ناباروری چاپ شده جا؟ پس اجازه بدین در جلسه آینده صورتش مفصل تر خدمتی امید سلامت. به خدا سلامت. خیلی تشکر میخوام از تشریف فرمایی تو که سالوت کردید و ما هم به اتفاق بینندگان عزیزمون از سفره دانش و معلومات شما این روز بهره مند سلامت باشیم. خیلی از شما رو با عافیت و بینندگان و عزیز و با عافیت و در همه سال خوب و خوشی داشته اللهم محمد و خیلی از همراهی و توجه و شما سروران گرامی. خاطرمون باشه که تو این فصل زیبای بهار مهربانانه همدیگر دوست داشته باشیم. و خدایی نکرده خدایی نکرده قلبمون کوه آتش نباشه چون اگه یه وقتی خدایی نکرده قلب کسی کوه آتش باشه نمیشه انتظار داشت که توی دستمون با اون قلب گل به رویه قلبتون، وجودتون، جسمتون، نگاهتون، اندیشتون، زندگیتون همیشه پرگل و با باشه خدا نگهدار